حکایت، یکی از ملوک خراسان محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده، مگر چشمان او که همچنان در چشم خانه همی گردید و نظر می کرد. سایر حکما از تعویل این فرو ماندند، مگر دربیشی که به جا و گفت، هنوز نگران است که ملکش با دیگران است. بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند که از هستیش به روی زمین بر نشان نماند. وان پیر لاشه را که سپردند زیر خاک، خاکش چنان بخورد. که از او استخان نماند، زنده است نام فرخ نوشین روان به خیر، گرچه بسی گذشت که نوشین روان نماند، خیری کنی فلان و قنیمت شمار عمر، زن پیشتر که بانگ برایت فلان نماند،